صفحه سی و چهار. زن بچه سه ساله و اسکلتوار و زردی را به سینهش می زن گی سفید و دیوانوار شباهت کمی به خانم سی ساله شاداب و ویراست خویی داشت که هفت ماه پیش در یست مادر جاوید سرور زیبا بود. نو صفحه سی و پنج درد و اندوه او بی پایان بود. در تمام روزها و شبهای این سفر دراز او احساس و شگون یک جور بلا و گرفتاری را داشت اما نه این مصیبت عجیب را سربرخانوم وقتی به اندک حال حوش آمد پسرش را به سختی به یاد می‌آورد زن بدبخت اسکلتوار شده بود و شعورش را از دست داده بود نمی‌توانست حرف بزند خواهر سه ساله جاوید افسانه کوچولو نزدیک مرگ بود جاوید نمی بفهمد پدرش چه شده بود، چطور مرده بود، کجا دفنش کرده بودند بعدها فهمید آن مرد شریف و مزدا پرست را در همین دخمه زیر زمین، در همین نقطه که مادرش شش ماه در سیاهی با عذاب نشسته بود، در خاک گذاشته بودند کنار آنها نشست، آنها را عشق ریزان در آغوش گرفت و به آنها دلداری داد انباری زیرزمین سیاه و مرتوب بود، با هوای خفه و بدبو و انتهایش در تاریکی ها ناپیدا. وقتی چشمهایش به تاریکی عادت نمود، بقچهش را باز کرد و چند دانه میوه خشکی را که ته کیسهش باقی مانده بود درآورد. در دهان آنها گذاشت، رفت از پاشیر کمی آب در جام پیمانه امویش آورد، اندکی نبات در آن حل کرد، به آنها نوشاند. پوشش نیز دور آنها انداخت، با آنها که سخنان او را انگار نمی فهمیدند حرف زد. ماندو بلاگردان آنها شد. میدانست که باید آنها را چه زودتر از آن دخمه سیاه بیرون ببرد. اما ننه احمد و پسر بچه دیگری بالای پله ها نشسته بودند و لابد نمیگذاشتند شاید قرار شده بود شب که همه جا تاریک و خلوت بود بیرونشان کنند. صدای پچپچ پچ و حرفهای آنها و بقیه را که میرففتند و میآدند میشنید. تا غروب نزد مادر و خواهرش ماند که حالا مانند دوتا تا کرمک گندیده میان دستهای او بودند. قروب سر و صدای کالسکه ملک آرارا را توی باغ شنید. صداهای خفه حرفها و دستورها و بیابروهای دیگری هم شنید. کالسک دیگری هم آمدند و رفتند. صدای رفت آمدهای زیاد دیگری هم از باغ به گوشش میخورد مادر و خواهرش باز خواب و بیحال بودند او آنها را در آغوش نگهداشت دست مادرش را در دست خود گرفت موهای خواهرش را نوازش کرد. نمی‌توانست حدس بزند چه زندگیهایی آن بیرون جریان دارد و حالا اهمیت نمیداد هرچه در این شهر بود مال خودشان او فقط چشم به راه شب بود و چشم به راهی که از اینجا بیرون بروند. در تاریکی کیسه زیربند زیر بند را درآورد نگاه کرد. آنچه پول مانده بود شمرد. پنج تا دو هزاری طلا و یک نیم اشرفی داشت. روی هم رفته یک و نیم اشرفی. امیدوار بود که این برای برگشتن به یزد بس باشد. مادرش با خود هیچ نداشت. حتی الانگو و گوشوارههایش هم رفته بودند، فقط یک پیراهن پاره و پوسیده به تنش باقی مانده بود. پول و مال پدرش را چه کرده بودند، اما جاوید امشب توانایی و وقت فکر کردن به پول پدرش و کلنجار رفتن با این آدمها را نداشت. در تاریکی انباری پشت مطبخ خرابه نشست و منتظر شد. منتظر اینکه نن احمد و بقیه اجازه دهند که بیرون بیایند. بوی بد کسافت و سیاهی سیال و ندانستن حقیقت رنجش می داد. و این چیزها درست دشمن آن پایه های فکری بودند که او با آنها بزرگ شده بود و باید با آنها زندگی می کرد. چقدر دلش می خواست می توانست یک جا خودش را در آب تمیز و بیبویی شستشو دهد. چقدر دلش میخواست یک جا رو به نور بیستد و نیایش کند. در تاریکی نشست. مراسم جشن صدر خودش را در آتش کده در آن روز فراموش نشدنی در یزد بیاد آورد. تو از امروز یک مرد پاک اهورامزدایی هستی و روان توانای زرتوش در وجود توست. آین نیاکانت را پا بر نگهدار این آین صدههای بسیار در دوران شاهنشاهیهای ساسانیان هخامنشیان و پیش از آنها آین ملی ایرانیان بود و این آین بر پایههای خرد و راستی و مهر استوار است. در میان سیاهی و بوی بد انباری پشت مطبق شازد ملک آرا نشست است. منتظر صدای اجازه نوکرها شد. نفهمید چند ساعت از شب رفته بود که صدا را شنید، انگار صدای چوب یا عصایی بود که به در مطبخ میخورد، پرید جلو رفت تا به روشنایی بالای حیات به پله ها رسید. امیدوار بود میرزا از مباشر باشد، چون او هرچه بود دستکم کم کفایت و ارزه انجام کاری را داشت و میتوانست آنها را راهی کند، اما هیكل چاق و صورت زردنبوی نوکر باشی سر پله ها بود. چماق چوب آلبالو جوری توی دستش بود که انگار از توی مشتش سبز شده باشد. از پشت سر او از توی حیات حالا صدایی نمیآمد اهل خانه لابط همه خابیده بودند. جاوید پرسید ما می توانیم حالا بیاییم بیرون؟ نه بدبخت به تمرگ آروم بگیر. میرزا از نیامده؟ اون وقتی پای وافور میشینه، دیگه حسابش با کرامل کاتبینه. تو هم یادت باشه. چیرا، بند کیسه را؟ چشم. اون از اون پدر های روزگاره. مواظب خودت باش. سر کیسه رو به طرفش شل ندی؟ بله آقا، ما آماده هستیم. نکرباشی با چشم هایی که توی تاریکی میدرخشید، او را نگاه کرد. گفت چقدر پول مول داری به اندازه یک اشرفی و نیم قلوملی توی حلقومش خندید هم این باعث شما رو برسونه تای است بعد گفت گوش کن باهات منو ببخشی که امروز با تو با بدخلقی رفتار کردم جاوید دست روی لبها و آرواره خودش گذاشت که هنوز از ضربت چماق باد کرده بود گفت فراموش کن آقا گذشته قلوملی گفت من مریضم و این میرزا از قرخان مدام من و این سگ این طرف و اون طرف می دونه. قباش را عقب زد. زیر شکم و آلت تناسلی مریضش را به پسرک نشان داد. منظره ای بود. تمام ناحیه زیر آلت تناسلی قلومالی و دو طرف بالای آن تا زیر شکم با تورم فتخ و بیزه ها باد کرده و قر بود. جاوید با اندوه بدن او را نگاه کرد. قلومالی گفت زن بیچارم، همین ننه احمد هم مریضه تمام دندونهاش ریخته پول ندارم براش دندون مصنوعی درست کنم جاوید کیسه سفیدش را درآورد از میان سکه‌های طلا یکی از دو هزاری‌ها را بیرون آورد به نوکر علیل داد بیا این مال شما نوکر ملک آرا با ناباوری پول طلا را گرفت چشمهاش از تعجب داشت از حدقه در می‌آمد در نور مهداب سکه را بررسی کرد، مطمئن شد که ناب است جاوید پرسید، قلومالی خان، پدر من چطور شد مرد؟ قلومالی سینش را صاف کرد، باز من و من کرد، و پیش از اینکه دهانش را باز کند، جاوید میدانست که او میخواهد دروغ بگوید. قلومالی گفت، هفته پیش از عید، بابات اون بالا توی ایوون داشت با آقا حرف میزد. یعنی اختلاط میکردن که افتاد سکته کرد سکته؟ یعنی افتاد مرد بگومگو مگو داشتن؟ به، مگه کسی با آقا و دعوا مرافه میکنه حالو توی این خونه آقا یعنی خدای عزوجل وجل تو هم که نمیدونی خدای عزوجل یعنی چه؟ جنازه را چه کردید؟ قلوملی وسط پاهاش را خارند با جنازش خب مكافات و زاریات داشتیم چه مكافات و زاریاتی چه میدونم اون وقت خب دست آخر بالاخره خاکش کردن کجا تو هم دیگه حالا بسه انقدر اصول دین نپرس و فضولی نکن گذشته گذشته آقا خودش خیلی خوبه شازده است اونقدر توی دربار و مجلس سرش گرمه و مشغله داره که به این چیزا نمیرسه و چندر قاز بابای تو رو نمیخواست اون چشم و دل و روحش سیره این اطرافیان بادمجون دور قابچین لامصب هستند علال خصوص همین میرزا قرخان که آبزیر یعنی همهشون ختم روزگارن پدرم را کجا خاک کردن قلوملی صداش را بلند کرد اه چه میدونم چقدر زرزر بیخود میزنی خاکش کردن رفت دیگه کجا <تص> <تص> گفتم نمیدونم، مگه مخ خر خوردی، مگه من خاکش کردم، من کارم تو اون حیاته، حیات بیرونی، خودشون، اون میرزا از و اون عبوتورا به خودشون دست به یکی کردن خاکش کردن. جاوید گفت، شما باید فهمیده باشی. گفتم بسه دیگه. به این نتیجه رسید که از این مرد امشب یا هرگز حرف راستی نخواهد شنید. پرسید. ما که میتوانیم راه بیفتیم؟ قلومالی گفت باها صبر کنی تا میرزا از بیاد چه وقت؟ قلومالی گفت چه میدونم، تو تو همینجا بشین تا من برم در خونش از پای منقل بلندش کنم بلند شد میان سایه روشن حیات ایستاد باز دوریالی طلا را روی کف دستش نگاه کرد زیر و رو کرد پوزخندی زد و گفت همین پای پله ها بشین، صبر کن، پولات رو هم سفت نگهدار، دار. چشم چکون نخور یا؟ خندید، دندان سیاهش در صورت زردنبوش کریح بود و چشمانش از آزمندی می درخشید. نخور نخیر، زودتر خواهش می‌کنم. قلوملی رفت جاوید به انباری آمد و سری به مادر و خواهرش زد که خواب بودند. همه چیز را جمع و جور کرد، بقچهش را بست، با خودش آورد دم دست گذاشت، نشست، صبر کرد به انتظار که این روزها انگار با نفس کشیدنش اجین شده بود. شب خنک و ستارهی بود، باد میان درختهای چنار و کاج و بید باغ می پیچید. صدای جیرجیر جیر, جیر بلند بود، جقدی میان انبوه درختها ناله می کرد. این صداها تو با صدای شُرشُر آب جویی که از وسط باغ میگذشت او را بیشتر به چرت می‌انداخت. چانه‌اش را روی دوتا دستهایش روی پله اول گذاشته بود. باغ و ایوان تاریک و بنای خانه را نگاه می‌کرد. هر جنبشی را توی باغ می‌پایید. خرامیدن گربه بالای دیوار را، لرزیدن شاخه‌های بید مجنون را ریختن برگ چنار را، حتی لغزیدن برگ زردی را روی زمین تماشا می کرد. از این گوشه که او نشسته بود، امارت خانه به شکل یک حرف نون وارونه جلوی چشمش بود. خودش در رأس راست آن قرار داشت و دالانی که قلوملی قرار بود از آنجا بیاید در رأس چپ. دور تا دور ساختمانها و اتاق حیات بودند. در سمت بالا، بنای بزرگ خانه با ستونهای بلند و ایوان و تارمیهای مجلل قرار داشت. ملک آرا آنجا خوابیده بود و لابد خبر نداشت در این گوشه باغش امشب چه میگذشت و شاید خبر داشت، اما به این چیزها اهمیت نمیداد. جاوید نشست، صبر کرد، نگاه کرد. گاهی میان افکار دور و دراز و پراکندهش چرچ میزد. نفهمید چه وقت خوابش برد. حتی نفهمید کدام صدا او را از خواب پراند. فقط ناگهان تکانی خورد و ضربت چماغی یا چوب اسایی که به پس گردنش کوبیده شده بود او را به پایین پله ها پرد کرد. نالهای در سینه و هلقومش پیچید و گفت نه پروردگار من این دیگر نه. بعد دنیا در چشم و مغزش سیاه شد. سحر که صدای خروزها را شنید و کم کم چشمانش را باز کرد، با صورت روی زمین روی آجرهای ته پله های مطبخ نزدیک چاله پاشیر افتاده بود. خون از پشت گوش و گردنش ریخته و روی آجر دلمه بسته و خشکیده بود. جمجمهش از درد سنگین بود و سوزش داشت. وقتی دریافت که کیسه پولش تنها وسیله بازگشت آنها را دزدیده بودند، فهمید که کابوس و شکنجه آنها در این خانه پایان نیافته است. در حقیقت از امروز کابوس اهریمنی زندگانی شخصی او تازه آغاز گشته بود. ده صفحه چهل و یک نخواستین کاری که کرد این بود که بلند شد به ته انباری مطبخ دوید. مادرش و افسان کوچولو هنوز اینجا بودند. سرورخانوم میان تاریکی بیدار نشسته بود. یک تکنان خشک را که با کمی آب نبات نمزده بود به دهان افسانه میگذاشت. جاوید نفس راحتی کشید. هرچه بود در این سحر تلخ به اینها آسیب تازه نرسیده بود. کنار مادرش نشست، سر او را در بغل گرفت و موهای او را بوسید. دیشب به او قول داده بود که شبانه از این خانه خارج خواهند شد. امروز صبح نمیدانست این پیشامد تازه را چگونه به این زن داغ دیده بگوید. نمیدانست مادرش حرف او را میفهمید یا نه. گفت: گوش کن مادر، میدانم حرف مرا میفهمی. باید بفهمی گوش کن. این قوملی که قرار بود دیشب به ما کمک کند تا ما از اینجا برویم چه میدانم؟ راستش نمیدانم چطور شد بعد از نیمه شب وقتی من سر پله ها چرتم برده بود او و یا شاید میرزا از قرخان یکی آمد با چماق توی سرم زد و هرچه پول داشتیم برد. سرورخانوم سرش را تکان تکان میداد و به بچه چیزی میخوراند. عذاب و درد برای او از حد گذشته بود جاوید گفت اما صبر کن مادر صبر کن قصه نخور من شما را از اینجا بیرون میبرم هر جور هست نشست، زانوهاش را بغل گرفت به تمام گوشه ها کرانه ها و ژرفنای این بدبیاری فکر کرد اندیشید که راستی چه کار بکند اگر می برود توی باغ و وقتی ملک آرا بیرون میآمد جلو کالسکه او را میگرفت کمک میخواست شاید به جایی میرسید لابد نمیگذاشتند. اگر میتوانست به نحوی نیز به در خانه سریا خانم برود آن زن مهربان بیشک کمک میکرد. اما دو ساعت بعد دید که تمام این پندارها و آرزوها بیهوده است. چون وقتی آمد سر پله های مطبخ، عبو تراب باغبون و قلوملی نوکرباشی با شلاق و چماق کنار کالسکه ملک ایستاده ایستاده بودند. کالسکه را تمیز و آماده می کردند. وقتی سر و کله پسرک سر پله ها پیدا شد، آنها او را با توپ و تشر و تهدید مجبور کردند به ته انباری برگردد. از جلوه چشم دور شود تا بعد تکلیفش را روشن کنند و تمام آن روز به همین ترتیب گذشت بعد از ظهر یک نفر آمد بالای پله ها. یک تکه نان سنگک و به اندازه یک سیر پنیر برای آنها از آن بالا پرد کرد جلوه چاله پاشیر که بخورند و نمیرند جاوید آمد نان و پنیر را برداشت نان را بوسید به پیشانی گذاشت، پنیر را با آب پاشیر شست، آورد آنها را به مادرش داد، کمی نیز خودش خورد، باز نشست به فکر و خیال. نمی توانست بفهمد چرا این آدمها نمیگذاشتند نمی گذاشتند که او و باقی مانده از این خانه بیرون بروند، یا حتی چرا آنها را بیرون نمی کردند. حالا که دیگر او چیزی نداشت پشیزی نداشت که این نوکرها و مباشرها بخورند مگر اینکه دستور داشتند دستور از چه کسی از ملک آرا؟ نه فایده این کار چه بود ملک آرا از نگه داشتن این زن و دوتا بچه چه سودی می بود. یا اگر آنها از این خانه میرفتند چه خطری متوجه شاهزاده ملک آرا میشد یادش افتاد که دیروز میرزا از قرخان به سریا خانم گفته بود که آقا دستور داده بود هر طور شده سر و ته آن مطلب را بی سر و صدا هم بیاورند توی محله و شهر جلوی مردم خوبیت نداشت که این حرفها و چیزها همه جا پخش شود پر شود چه حرفها و چه چی چیزهایی بود که نمی بایست همه جا پر شود اینکه ملک آرا یک خانواده زرتشتی را توی باغش نگه داشته بود یا شاید اتفاق دیگری افتاده بود و ملک آرا نمی‌خواست سر و صدای آن همه جا بپیچد چه اتفاقی افتاده بود دو سه ساعت از شب رفته که صداهای باغ خوابیده بود و همه جا باز خلوت شده بود جاوید آهسته آمد بالای پل‌ها سر کشید باغ خالی بود به در باغ نگاه کرد، در بزرگ باغ از داخل کلون شده بود و قفل درازی هم به آن زده بودند. دیوار کوچه هم اگرچه بلند نبود، اما با گل و گیاه انبوهی که از آن آویزان بود، جاوید نمی توانست مادرش و افسانه را از بالای آن عبور بدهد. گذشتن از در حیات بیرونی نیز محال بود، با افزردگی باز نشست و صبر کرد. آخرهای شب باز قلوم علی نوکرباشی آمد بالای پله مطبخ او را صدا کرد. جاوید از جا پرید و به سرعت آمد بالای پله ها. به امید اینکه امشب به آنها اجازه خروج بدهند. قلوم علی مثل دیشب بالای پله ها ایستاده بود. هی hey, نفله جاوید از ته پله ها سرش را بلند کرد. بله دیشب نشد فلنگو ببندین. زبان قلومالی همیشه آکنده از تکیه کلامهای مدفوع و قسمتهای پایین انسانی بود. جاوید او را نگاه کرد. کوشش کرد بفهمد این مرد امشب دیگر چه میخواست. گفت نخیر. نخیر چی؟ نخیر نشد بریم. قلومالی گفت حالا چهریختی میخوای برگردی کاشون؟ یست. خوب یزد هر خراب شده ای چه ریختی میخواین برگردین جاوید گفت ما دیگر پول نداریم اما اگر شما فقط اجازه بدید من و مادرم و خواهرم بی صدا بدون اینکه کسی بفهمد از اینجا از این محله زحمت را کم میکنیم میرویم بیرون به عهدی هم حرف نمیزنیم من قسم می خورم لطفا نیکی بفرمایید سواب دارد قلوم علی گفت، نمیری الهی، تا خودم شب چهارشنبه سوری آتیشت بزنم. جاوید سرش را برگرداند و گفت، خواهر من بیمار است، مادرم هم به حکیم و دوانی نیازمند است، من از شما خواهش می آقا. از اینکه به این نوکر پلید و دقل ناگزیرانه التماس می از خودش بدش آمد. قلوم علی گفت، دیگه هیچی پول مول نداری؟ جاوید آهی کشید و فهمید این مرد باز چرا به سراغ آنها آمده است. به سادگی گفت دیشب که منتظر شما نشسته بودم و چرتم برده بود یک نفر آمد با چماق زد توی سرم و کیسه را برد. این را گفت و نوکر زردنبو را به دقت نگاه کرد. قلومعلی با پوزخند گفت توی این محله شبها دوز زیاد شده. شهرستونی ها زیاد ریختن اینجا، واسه همینه که درها رو قفل میکنیم. جاوید گفت: «به هر حال دزدی دیشب گذشته اگر اجازه بدید ما میتوانیم خودمان را به خارج شهر برسانیم. قوملی گفت: بیمایه فتیره بی پول و پله چطوری میتونیم از این شهر تکون بخورین؟ خواهش داریم شما یاری بکنید. چطوری میخواین خودتون رو تا یزد برسونین؟ جاوید گفت یه کاری میکنیم. قلومالی نش کرد. جاوید پرسید شما میگوید چه کنیم جناب قلومالی خان؟ قلومالی گفت میتونین همینجا باشین آقا مخالفتی ندارن. و چه کار کنیم؟ تو میتونی کار کنی. ستاره ها روی باغ ملک آرا درخشیدند و دست قلوملی توی جلوه شلوارش بود. پایین تنه قرش را نوازش میکرد. کاری که انگار سرگرمی و مشقله دست فکر شبان روزیش بود. جاوید گفت اینجا کار کنم؟ قلوملی گفت پس کجا سر نقاره خونه؟ جاوید گفت مادرم و خواهرم هر دو بیمارند. باید آنها را تا نمردند ببرم قلوم علی گفت خفه خون بگیر بزمجه آخه کدوم گوری میتونین برین آقا دستور دادن تا چند روزی باهاس باشین تا سر و صداها بخوابه تا سر و هر جوری هست به هم بیاد تو پسر زبل و با ارزهی هستی هوش و حواست داری همینجا بمون پولی جمع و جور کن تا بعدها برگردین سر هر خراب شدهی که بودین جاوید گفت، چجوری جمع کنم؟ قلوم علی گفت، میتونی آدم شی، بعد بری دست آقا رو ماچ کنی، شازده اجازه میدن، همینجا نوکر اربابی بکنی، شازده کارهای ثواب زیاد کرده، مادرشون خاتون خانوم دربار زند بوده، دلرحمه یه یک کاری بهت میده، بعدها هم ایشالله خدای بزرگ اوستا کریمه، جاوید او را توی تاریکی نگاه کرد جمله ایمون بیاری قلوم علی را نشنیده گرفت. حتی اثر آن را فوری از ذهن و لوح روانش پاک کرد. او ایمان و آینی داشت که این مرد دزد و ابله هرگز از جرف پایه و بلندی و استواری آن بویی نبرده بود. گفت من کاری بلد نیستم. و باید فوری مادر و خواهرم را هم از این خانه ببرم. قلوملی گفت، همین که گفتم، میمونی درست میشی، نوکری میکنی تا بعد حال و تکلیفت روشن بشه. جاوید گفت، خواهش میکنم، شما خودت از یک راهی کمک کن، من بعدها تلافی میکنم. نمی توانست برای این مرد توضیح بدهد که بدترین شکنجه دنیا برای یک زرتشتی این است که او را در یک جای تاریک دور از نور و آتش زندانی کنند. بخصوص که پاکی و شستشو برای نیایش هم برایش غیرممکن باشد. این مرد نمیفهمید. نمیشه دستش را از جلو شلوارش درآورد. سرش را زیر عرقچین چرب و چرک خاراند پس اجازه بدید من فقط یک دقیقه سرعی خانم را ببینم نمیشه خواهش میکنم گفتم نمیشه خفه خون میگیری یا نه نکبت آتش افروز ده باست بفهمی چی واسد خوبه و الله همتون رو میده همینجا ته انباری سربه نیست میکنن بیفایده بود قلوم خسته شد خمیازه ای کشید، پاشد به سوی دیگر باغ به طرف دالان حیات خلوت رفت و میان دالان تاریک محو شد. جاوید فهمید که تکلیف خودش هم اکنون روشن است. او هم اجازه بیرون رفتن نداشت، مانند مادر و خواهرش. او هم باید اینجا میماند، نوکری میکرد تا بپوسد یا بمیرد و مادر و خواهرش هم با او بمیرند. در تاریکی و بوی بد انباری پیش مادرش برگشت، باز کنار او نشست، باز سر او را در بغل گرفت، باز به فکر فرو رفت. امشب یاد سخنان عموی پیرش که در نخستین تپه های پست جاده تهران مرده بود، در مغز او موج و کم کمرنگی داشت. یازده صفحه چهل از آن شب بود که نقشه فرارش را از خانه ملک آرا پیریزی کرد، طی دو سه روز بعد از راه نشستن روی پله دوم مطبخ قدیمی و بازنگهداشتن داشتن چشم و گوشش و گهگاه حرف زدن با قلوم علی و ابو تراب کالسکچی و باقبان کم کم به روال و روند خانه و زندگی اهل خانه آشنا شد. در بزرگ باغ همیشه از داخل کلون بود و قفل بود. البته به جز مواقعی که آن را باز می کردند تا کالسکه ملک آرا بیرون برود. یا وقتی کالسکه ملک آرا می آمد که در این مواقع قلوملی از حیات بیرونی می دوید می آمد در را باز می کرد. جاوید از وضع در دیگر حیات از در حیات بیرونی خبر درستی نداشت. اما میدانست به هر حال آن حیات مدام شلوغ است. حیات بیرونی شب و روز پر از بیا و برو و بچه های قلوملی و سایر نوکرها و کلفتها و آشپزباشی بود. اتاق دفتر و دستک میرزا از قرخان مباشر هم البته آنجا بود. در حیات خلوت در باغ بزرگ به جز خود ملک آرا از سایر اهل خانه به ندرت کسی دیده میشد و کسان زیادی هم نبودند. اتاقهای سمت راست باق اتاقهای بالای مطبخ و انباری و آب انبار دست مادر ملک آرا بود. بیبی بی گوهر تاج خانوم اینها را اتاقهای بیبی بی خانوم می گفتند. بیبی بی گوهر تاج خانوم پیر و زمینگیر گیر بود. اتاقهای سمت چپ باغ اتاقهای بالای مطبخ تازه و دالان دست تاج ما خانم زن ملک آرا بود که او هم حالا سنی داشت و ظاهرا فقط دو تا شکم زایده بود یا از او مانده بود. پسرش کیومرس خان که می گفتند در فرانسه است و آنجا تحصیل کرده بود و حالا کار می کرد. دیگری البته سریا خانم که او هم به ندرت به این خانه می آمد. از اهل خانه جاوید فقط یکی دو بار تاجما خانم را دید از دور بالای ایوان که با هیکل بسیار بزرگ مانند کوهی از گوشت و پیه و چربی با چادر نماز گلدار خود